حکایت، حکیمی پسران را پند همیداد که جانان پدر هنر آموزی که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر است یا دزد به یک بار ببرد یا خاجه به تفاریق بخورد اما هنر چشمی زاینده است و دولت پاینده و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنرمند در نفس خود دولت است هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی لغمه چیند و سختی بیند سخت است پس از جا تحکم بردن خو کرده به ناز جور مردم بردن وقتی افتاد فتنهی در شا، هر کس از ای فرا رفتند، روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند، پسران وزیر ناقص اخل به گدایی به روستا رفتند.